اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می‌گویند و او عزیز و حکیم است.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 فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقد ففي قلوبهم رعد يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار او الابصار وكفيست كافران اهل كتاب را در نخستین برخورد با مسلمانان از خانهایشان بیرون را گمان نمی کردید آنان خارج شوند و خودشان نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می شود اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در دلهایشان ترس و وحشت افکند گونه ای که خانه های خود را با دست خیش بابا دست مؤمنان ویران می‌کردند پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء عذابا في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقرر داشته بود آنها را در همین دنیا مجازات می‌کرد و برای آنان در آخرت نیز عذاب آتش است ذالک بان انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر کس با خدا دشمنی کند خدا مجازات شدیدی دارد ما قطعتم من لینه او ترفتموها قائمتا على اصولها فبی الله فبی الله هر درخت با ارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید همه به فرمان خدا بود و برای این بود که فاسقان را خار و رسوا کند وما الله علی رسوله منهم فما فما وجدتم عليه من خير ولا ركب ولاكن ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وان كرى خدا عزانا يهود به رسولش بازگردانده است که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید نه اسبی تاختید و نه شتری ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط میسازد و خدا بر هر چیز تواناست أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا, كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما لهاکم عنه فانتهوه و الله این الله شدید العقاب خداوند از اهل این آبادی به رسولش بازگرداند ازان خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است لِلْفُطَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَبْوَالِهِمْ يبتغون, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاءَهُمُ الصَّادِقُونَ. انبال برای فقیران مهاجری است. که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می و خدا و رسولش را یاری می کنند و آنها راستگو یاند و الذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر يحبون من هاجر إليم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أودوا ويأثرون ويأثرون على خزيم ولو كان بيم خصاصة وَمَن يُقْشِرُ حَنَفَسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و برای کسانی است که در این سرا سرزمین مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست میدارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی‌کنند و آنها را بر خود مقدم میدارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و هرس نفس خیش باز داشته شده اند رستگاران اند و الَّذِينَ جَاؤُوا مِن بعدهم همچنین کسانی که بعد از آنها آمَنُوا بعد از مهاجران و انصار آمدند و میگویند پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند به و در دلهای من حسد و کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده پروردگارا تو مهربان و رحیمی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 وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَا وَصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب میگفتند هرگاه شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرده و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود خداوند شهادت میدهد که آنها دروغ گویانند لِن لا يخرجون معم وَِن قُوت لا يصرونَهم وََِّ صهم وَلا إِ صهمم لا اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمیروند و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار میکنند. سپس کسی آنان را یاری نمیکند. لأنتم أشد رهبة فی صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا فقهون وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست این بخاطر آن است که آنها گروهی نادانند لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون انها هرجز با شما به صورت گروهی نمی جنگند. جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها پیکارشان در میان خودشان شدید است اما در برابر شما ضعیف. آنها را متحد می در حالی که دلهایشان پراکنده است این بخاطر آن است که آنها قومی هستند که تعقل نمی کنند. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا ذا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كار این گروه از یهود همانند کسانی است که کمی قبل از آنان بودند طعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آنها عذابی دردناک است کمتل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر فلما کفر قال انی بريء منك انی اخاف الله رب العالمين قار انها همچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات حل کند اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم من از خداوندی که پروردگار آلمیان است بین دارم فکان عاقبتهما اندهما فی ناری خالدین فیها فيها ذالک جزاؤ الظالمین سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن میمانند و این است کی ای فرستم کاران یا ای والذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت خدا بپرهیزید و هرکس باید بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون بمحنتان کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد آنها فاسقانند لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة و ملفائزون هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند اصحاب بهشت و و پیروزند لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اگر این قرآن را بر برکوهی نازل میکردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم او خدا است. جَ مَعْبُودِي جُزْءُ او نیست، دانای آشکار و نهان است و او رحمان و رحیم است هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خدا است که معبودی جزو او نیست حاکم و مالک اصلی اوست از هر عیب منزه است به کسی ستم نمیکند امنیت بخش است مراقب همه چیز است قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح میکند و شایسته عظمت است خداوند منزه است از آنکه شریک برای او قرار می‌دهند او الله الخالق الباری المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم او خداوند است خالق آفریننده‌ای بی‌سابقه و صورتگری گری بی بینظیر برای او نامهای نیک است آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او میگویند و او عزیز و حکیم است.